فصل هشتوم بیشعور مدنی اگر هفته ای دستکم یک بار در اعتراضی مدنی شرکت نکنم، هناغ میگیرم. علت اعتراض مهم نیست. مهم خود اعتراض کردنه که به خاطر اون زندگی میکنم. هنریتا براون یک اکتیویست بیشعور تحت درمان اعتراض مدنی مدر روزه سابقا روال بر این بود که مردم اعتراض می‌کردند تا به آزادی و حقوق خودشون برسند اما گویا امروزه افراد زیادی از آزادی و حقوق خودشون فقط در راه اعتراض کردن استفاده میکنن. اونا همیشه در حال اعتراض مدنی و شعار دادن هستند شعار دادن در نزدشون حتی از یافتن راه حل منطقی برای مسئله‌ای که به اون اعتراض دارن هم مهمتره. بسیاری از آدم به همین راحتی و صرفاً با دادن شعارهایی که خودشون به اونا اعتقادی هم ندارن، اکتیویست میشن. البته در واقع اکتیو در بیشعوری. پیتر لیلی در کتاب فریاد بیشعورها، ریش فعالیت‌های فعالیت های مدنی بیشهور ها رو از اربدها های انسان های اصر حجر تا بم های آنارشیستی قرن نوزدهم و تا جنبش های اعتراضی زمان کنونی ردیابی میکنه. او هشدار میده که با آدی انگاشتن این جنبش های و محسوب کردن اونا به عنوان حقوق مدنی افراد خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. جامعه در حال به آغوش کشیدن بیش است حقایق زیادی در این هشدار وجود داره. بسیاری از افرادی که نزد من میان و اعلام میکنند، من بیشعورم با شرکت در تظاهرات و جنبش های اعتراضی دهه 1960 به استقبال بیشعوری رفتم. خواسته ها و شعار این افراد ابتدا فقط در مورد آزادی و رهایی بوده، اما در سال های بعد یاد گرفتند که با شعار و اعتراض چگونه از زیر بار تعهدات ازدواج، شغل، خانه و احترام به هم نیز رها و آزاد بشن. در سایه همین حرکت ها، اونا از آرامش خاطر، بزرگواری و تعداد زیادی از دوستانشون هم رها و آزاد شدن. البته باید تاکید کرد که این عامل دلیل اصلی به وجود آمدن این نوبیشورها نیست بلکه هیجان اعتراض دلیل اصلیه مثلا از اون ایده که علیه بارانهای اسیدی تجمع به راه میاندازند تعداد بسیار کمی میدونند که بارون اسیدی چیه و اصلا وجود خارجی داره یا خیر اونا به همین سادگی در یک تجمع اعتراضامیز علیه بارانهای قلیایی هم شرکت می و حتی ممکنه همزمان در هر دو شرکت کنن. با این حال افراد بسیار کمی هم وجود دارند که همیشه برای حفظ فکها یا نهنگها یا جغتها در حال تلاشند. کسانی که می از هیجان بیشتری لذت ببرند و با مده بهتری شناخته بشن افرادی که هواشی نیکوکاری برای اونا جذابتره تا خود نیکی کردن بیشعورهاگ مدنی شاید ترین نوع بیشعورها برای جوامع مدنی باشن این امر نه به خاطر میزان شرارت بالایان راست که البته بعضی دارن بلکه به خاطر میزان بالای واگیری بیشعوری اوناست بیشتر بیشورها به تنهایی کار میکنند اما یک بی مدنی به این قصد در تجمعات حضور پیدا میکنه تا صدها هزار نفر رو که میخوان با دادن شعارها و خواندن آوازهای لوس و محمل دنیا رو تغییر بدن به خود جذب کنه و این همون فضا مطلوب برای انتشار بی همان گونه که ادولف شنایدر به وضوح در کتاب بیشعورهایی که من شناختم یادآوری میکنه در حقیقت هیتلر در جنگ پیروز شد البته نه در لشکرکشی نظامی بلکه در تلاش برای عوام فریبی و سوء استفاده از احساسات مردم او تخم معترزانی رو کاشت که توقعاتشون انتهایی داره و نه هیچ چیز میتونه جلوی خودخواهی هاشون رو بگیره خودخواهی هایی که معمولاً هزینه هاشون رو باید کل جامعه بپردازه و بدینسان فاشیسم در کالبد بیشعور مدنی و به شکل اعتراضات مدنی به حیات خود ادامه میده. یکی از دلایل این که چرا در جوامع اروپایی به ویژه ژرمن اعتراض های مدنی نسبت به ایالات متحده ای آمریکا جا افتاده همینه؟ هرچند امریکایی ها هم در تلاشند تا کمکاری گذشتشون رو جبران کنند. از این رو به نظر میرسه که اروپایی ها بیشتر از سایر مردمان دنیا از بیشعوری دل زده شدن و احتیاج دارند که جلوی اونو بگیرن. پنج خصیصه که به طور معمول بیشعورهای مدنی واجد اونان از این قرارن. یک بیشورهای مدنی قابلیت شگفتانگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مسئله را رو دارن همون وجهی که نفع اونها رو تأمین میکنه. به همین خاطر که سفید که با سیاه پوستان بد رفتارری میکنن نژاد میشن اما سیاهپستانی که با سفیدپوستان بدرفتاری بد رفتاری میکنن فقط همسایه های بدی محسوب میشن. سیاهانی که علیه سفیدها تبعیض قائل میشن، فعال اجتماعی خونده میشن و سیاه که به نفع خودشون علیه اسپانیایی ها یا کوریی ها قائل میشن لابد کاری منطقی و قابل توجیح برای حفظ همبستگی قومی جامعه سیاه ها میکنن همین منطقه یک جانب گرایانه در مورد فمینیست ها،, ها، وطنپرستها و به تازگی بیخانمان ها به کار میره دو بیشعورهای مدنی عاشق نفرت ورزیدن هستند انگار خمیرشون بر پاگ منفی بافی شکل گرفته. کسایی که با اونا نباشند علیه خودشون فرض میکنن و هر کس رو که مخالفشون باشه دشمن می انگارن، اونا به هیچ نظر واقعیتی که مخالف نظر خودشون باشه توجهی نمیکنن تا مبادا روشون اثر بذاره و طرز فکرشون رو تغییر بده اما با وجود انرژی و وقت بسیار زیادی که برای اعتراض و نفرت ورزیدن می‌گذارند به ندرت از خودشون می‌پرسند که چرا و به چه علت اینقدر معترض و متنفران. س. اونا برای خودشون حقوق ویژه‌ای در خصوص بی‌انصافی، آزار رسانی و دعواگری قائلن. اگر مجبور شدید چندتا تا سمور بکشید، کافی از اجسادشون فیلم بگیرید و بعدا ادعا کنید که اون زبون بسته ها به خاطر تل گذاری تلف شدن. بنابراین، مسئول چنین فاجعه ای سناگه تل سازیه. ها به همین راحتی جور میشن. وقتی یه بیشعور فعال مدنی و اکتیویست بشه میتونه تا اونجا که دلش بخواد بیشرمی و گستاخی پیشه کنه چرا که بالاخره او مشغول فعالیت مدنی مهمیه و به این خاطر هر غلطی که دلش خواست میتونه بکنه مثلا نه تنها مجاز خواهد بود به کسانی که پالتو پوست پوشیدن توهین و به حریمشون تجاوز کنه بلکه حتی حق خواهد داشت که با اسپری پالتوهای گران قیمتشون رو رنگی و کثیف کنه چهار، اونا به همان مهارتی که به دیگران دروغ میگن به خودشونم دروغ میگن. ترفندی یک فعال مدنی بیشعور اینه که در همان حالی که نقش پیروی از گاندی رو بازی میکنه، طوری نفرت و کینش رو ورز میده که دستکم به زد و خورد بیانجامه. پنج، مهمتر از همه این که بیشعورهاگ مدنی اصلاً حس طبعی و ظرفیت شوخی ندارن. اگر کاملا سهوی در مورد موضوعی که روی اون لطیفه ای گفته بشه، فوراً از گوینده چنان دیوی می که دفع شرش واجب باشه. گویی میترسند که اگر سوشه خنده دیگران بشن، اعتقادات پاک و راسخشون متزلزل بشه. یهودی‌ها میتونن درباره یهودیت جوک بگن و سیاپوستا میتونن درباره هاشون جوک بسازن اما اگر کسی بیرون از مجموعه بخواد با هر کدوم از اینا شوخی کنه فوراً پدرش رو درمیارن به جای جوک‌های لهستانی حالا میتونیم درباره وکلای دادگستری جوک بسازیم اما بعیده که تنزهای آری از مسائل جنسی و قومی چندان خندهدار یا حتی سالمتر از اونایی باشن که حاوی این مسائلن بیشعورهای مدنی به شدت تشنه قدرت‌اند اینها کسائین که تا زمانی که به چنان قدرتی دست نیابند که نظرات مشعشعشون درباره نحوه زندگی رو به دیگران حق نکنند از پا نمیشینند. اما تنز قضیه اینجاست که فعالیت مدنی و احساسات آزادی خواهانه اونا فقط از طریق سوء استفاده و بحرکشی از دیگران یعنی مجبور کردن مردم به قبول سلیغشون و پشتیبانی از هوا و حوث های اونا اقناع و تأمین میشه شیوه ای اونا نوع تازهی از بردهداریه. اونا اونا همونقدر به قربانیاشون احتیاج دارن که قربانیاشون به اونا نیازی ندارن یکی از بیمارانم میگفت تنها چیزی که در زندگیم همیشه عاشقانه اونا انجام دادم نفرت از شوهرم بوده الان واقعا از کشتنش متاسفم و زندگی بدون اون به نظرم خیلی پوچ و خالی میرسید دیگه نمیدونم با چی باید چی کار کنم از بخت خوش برای ما و خودش همکنون او در بازداشتگاه نگه دارید